می‌چیزو تموش می‌کنم ناراحتم. آره. دقیقاً همینه که گفتی. خیلی خوب دوری. حالا وقتشه وانمود کنیم که بچه‌های دیگه‌ای هستیم. آماده باش. ها؟ سلام دوری. خوبی کوچولو؟ تو قالی پوشک دوست داری؟ عاشقشم دوست دارم. ما غایبشیم فهمادش مردن یا پیدا موند. باشه بابا. نه نه، اون بابا نیست. یه ماهه زیباتر هم که میخواد دوست تا باشه دوری. باشه؟ قبل از نه. من رفتم قیم شم تو هم تا ده بشمار یک دو سه چون من آسق سنه نرم و قسنگم مامونی میان باشم باشم داری باشم داری باشم داری باشم ترابوت باشماری یاد از ما شد دل بدم das jaryani shadid ab dur bosh. Gosht kardi kojuli. Hala biye sherike yad-e dadam o mikhunim. Waqti jaryanish shadid ab didim, chi mikhunim? E bezan berim. Na, na. Migim tarafesh nemirim. Faramush kardi, dobare mikhunam. Waqti jaryanish shadid ab didim, chi mighofte? Jaryanish shadid ab, jaryanish shadid ab o ke didim, mirim ta nasik oon bebinim che juriye. Ha. Hm. باید چیزی رو فرموش کنید نه نه عزیزی نه نه عزیزم خوبه ادامه بده فسلی بید ولی اگه شما رو فرموش کنم اگه شما مرا فرموش کنید چی؟ دوریه نازنا ما هیچ وقت رو فرموش نمی کنیم دوری و مطمئنیم که تو هم ما رو فرموش نمی کنیم موسیقی <تصفيق> رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم میکند در جست و جوی دوری او های سالو تام شنیدی چی شنیدی صدایی که میگفت سلام صدا نشیدم که چی میگفت سلام خیلی لبازه بود مرد چطور نشدید صد دفعه بهت گفتم خودت برو یه دکتر نشون بده زنگ گوش که نمیخوام چیو ای یکی کمک می‌خاسته اون طرف وایسا کجایی من اینجام ای منم شنیدم بچه اس اومدم کجایی خلی نرو زن قسم نخ وایسا. سلام، من دوری هستم. میتونی کمکم کنی؟ سلام کوچولو، پدر مادرت کجاون؟ آره آره، ریزالم راست میگی. ایو تم نمیوت؟ خب دورو برات خوب ببین. چ پدر مادرتو دیدی ها؟ بچه، یه وقت یکی. ها؟ سلام، من دوری هستم. میتونی کمکم کنی؟ چی میگه؟ ام. حسسه دلم تو که اینو همین الان به ما گفتی گفتم اها ببخشید ما حافظه کوتا مدت ما دست دوتان آچه هدو آوزه کوتا مدت نداری؟ جل از این منتظر به ما الان می آیم پیشت باشه سن بابا جا... سن... با زیبان, با زیبان شد چرا به هیچ میگه حافظه کوتا مدت نداره؟ بزن... اون چیز یادش نمیاد باید؟ موسیقی کاری کنیم عزیزم سن من... از اینکه تو شعرمی حالم بزمیشه بزن... دوری عزیزم ببخشی دوری؟ داری؟ داری؟ عزیزم کچه هایی؟ من دوری هستم من خونو بودم کم کرد آ آ مان تویی هستم از اینکه زود فراموش می‌کنم ناراحتم. خودت چیکار کن من خیلی میترسم. تو می‌ترسی. سلام من خونه وادمو گم کردم کمکم می‌کنی. آخر این بار کجای دیدیش؟ تو سرش طولانیه ولی هیچ چی یادم نیست. نظرت چیه تو هم بیای با ماشینو کنم؟ نه بابا تا هم روزو دارم شنا می کنم. برای مخدونم اصلاً چیزی یادم نمیاد. اصلا کی دم به یاد یکی رو پیدا کنم؟ چه ریدی نمی‌خینگی خدا؟ یادت بیاد دوری. سلام من دوری هستم. یعنی قاطرش ناکم. خوب باشه باشه از اینجا میرم ای آرزو خدمت دوستان که من باش شما برین یه وقت شابتون سرد نشه خوب میترام زود فایداش کنی حرکت بده شام میمونی چاره نکونینا مزه سوتا مزه بیسکویت باشه بیسکویت میخور باشه بعدا مزه میعات ایجاد میکنم یه وقت غریبی نکنینا غریبی داداش میجامون برو صاف بابا بابا دوستی دانش من باید اون قایقو پیدا کنم قایق؟ من اون قایقو دیدم از این طرف از این طرف دنبالم میام مرد مرد اشکت بزرگوار یکسان <تصفح> و تا رخم ای یار بس طرفش اون قوطی تو شوکلات میرزه ماشاالله چخخخای باشه درستش میکنام ای ماله ای بگم من دوست دارم بگوی نصف شب چی میخوای بچه برو بگیم بکاپ دیگه آبوزنگو. متاسفم، الان بیایت بخوابم هی مالی مثل اینکه خواب نداری برو دیگه آف، بیدم بیایت بخوابم هی مالی نه خیر، خواب بیخواب بیدار شو پسرم تو مالی کی میگی؟ حتما نمو. درسته. چرا گفتی؟ می‌خواستم بگم فاوی انگا همین دیروز بود چه زود یه روز گذشت. کی <تصفيق> خیال؟ ولی ترسناک‌ترین قسمت سفر کنار اون 4 تا کوسه بود. ولی بابا به نظرم 3 تا بودنمو. نه نه نه, نه, نه مچمنم اونها 4 تا بودن. بالاخر گفتی 3 تا بودن. خود یکی از ما کل اقیانوسو سفر کرده؟ نمو. آخه ما مجبور بودیم واسه پیدا کردنش کل اقیانوسو بگردیم. درسته. خداییش اول اون کلوقیوسو کشته. آ، بالاخره رسیدی نکنه بی خیال گردش علمی شدی نه؟ گردش علمی من که عاشقشام کجا می‌ری؟ حالا این توجهش نکردی. الان میگم داری؟ بله. عزیزم امروز غیریه باید مراقبه کلی ماهی کوچولو بشی گرفتی؟ باشه همین به پیشنهاد می‌کنم که استثناا امروز تو گردش علمی باشون نری. آ، چرا؟ ببین میدونی چون تو حافظهت یه کمی مشکل داره؟ یه کمی نه بابا خیلی مشکل نیدونم. داره. نه، البته این تخسیر تو نیست ولی ممکنه باعث دردسر بشه. آقا ریام انقدر سر شلوغه که نمیتونه حواسش هم به تو باشه هم به بچه‌ها. چطور بگم اون دستنهاس کمک نداره. علی می میرم چرا سخمات میکشه؟ پس گرفت یعنی اینطخه انگار. خوبه. در واقع میخواد من دستیارش مش. نه نه نه نه زحمتشو. چه زحمتی مالین؟ یادم نمیاد توالا دستیار کسی بوده باشی. آقای ری خدا بهت صبر بده آه اومدی کشکی نمی اومدی خیلی خوب بچه ها خیلی خوب بچه ها یک روز روزی ها یک روز روزی ها یک میایی مهاجرت صفر ماهی ها رو ببینیم صفر ماهی ها نمیدیم خب حالا کسی میدونه چرا مهاجرت بکنن بچه ها هرکی میدونه بگیر بچه های ناظرین مهاجرت یعنی برگشتن به به قفت خواه آفاره نه نه ماجراتری برگشتن به خونه به جایی که زندگی میکنی زندگی میکنی کسی میتونه بگه کجا زندگی میکنه چه کار یه تخته بزرگ بسی تو تپه برجانی اون طرفتر خونه من و خزه ها پوشوندن تو کجا بزرگ شدی داری؟ آه، من آه، نمیتونم اه. آه، خونوازم آه، کجا هستم؟ ام شما کمک می‌خوای؟ من واقعاً <تصفيق> یه بصفرم، فراموش کردم. آخه من همه چیزو فراموش می‌کنم. تو <تصفيق> که همه چیو فراموش می‌کنی، چطور یادت خونه واده داشتی؟ ها؟ سوال خوبیه، سوال خوبیه. می‌دونید من یه چیزایی رو خوب به خاطر میارم. مثلا اینکه من خونه واده دارم. چی گفتم؟ بالاخره به یاد از یه جایی اومده. واش هم دیگه. پس خونه واده دارم. البته همه خونه واده دارن. شاید نتونم اسم یا قیافه‌شون رو به خاطر بیارم، ولی عروسکم نیستن که به شکلی دیگه خرید خوب. اصلاً پسری چی؟ بابا ها مامان بابا ها درسته حالا چرا در مورد اونا او سر کلاسیم او پس گوش کنین که بگم هرچان براتون زوده چوره چیه میدونین بچه ها وقتی دوتا ماهی آشق آشتها... بچه برم صحبت رو همینجا قد کنم بپریم بالا کاوش کرد و آمده باشین تا همه ما هم آواز ما حاجرت رو بخونیم آواز من و همه بچه ها Ti je vajë, cariçë më mamingë, çka po ndjen haç, ma u hamë vajë. Ku je rafë, as nuk <tusimus> kuja punvaj. Ah, aşna, përdosh një kardë. Por shit më thonë rësh me devashinë. آه بچه ها از لبه دور شید شنید این بچه ها از لبه ها دور شید آه شما ها دیگه خیلی دور شدید بچه ها بوجه ها می‌فیس کلی ها باید گردید این طرف حالا می‌خوام همه گوش کنید همه گوش کنید هستی صفر ماهی از ایجا رد می‌شه؟ صفر ماهی رد می‌شه؟ باید مراقب چی باشید؟ همه باید مراقب چی باشن آه؟ جریان شدید دیگه هست بوره اون همه صفره ماهی باعث ایجاد جریان شدید آب میشه و این خطرناکه بچه ها آقای ری صفره ماهی ها کجا میدونم کجا باید مران به کمک قریزه نبود چیزی در اماق وجودته منقدر آشتاست که باید بهش گوش کنیم باورش کنیم شبیه آوازی که همیشه ولدی و الان من میتونم آواز خانواده با بشتمم devonte me micë raye hunab oh no gori gori me hunab nuk morde çu nuk morde dore mi mire و که تو رو خوشو حال وات کنی خلیج موروکالیفرنیا خلیج موروکالیفرنیا اوه یه چیزی داره یادم میاد اوه یه چیزی داره یادم میاد یه چیز خیلی مهم چیز مهم چی چیه اوه I don't remember it but I'm feeling it آقای ری ببخشید تو زحمت افتادی آقای نه هیچ بسی در نیار دوری بید به خاطر بیاری آه. آو، آو، آو شو نرمیده تو من؟ آخ، نه یادم نایمد یه چیزی بود درباره یه آو، آو، یه چیزی در مورده آخ آن جواهر خالیج مورد خالی باید خانوادم، خالی خانوادم داره یادم یادم یادم یه جای اون میرونم باید فیداشو کنم بچه ها، شما باید کمکم کنید بچه ها کجایین؟ بچه ها، کجا رفتی؟ کجایین؟ دارید آه کجا موندی کجا خوشا شدی رفتی خونه با اونارو یادم اومد تو کی یادشมา خونه با چهجور مامان بابام منم خونه با چطور نمو آ اون نمیدونم من کجان بیان بریم بیا دی فونا کی ما نمی دونیم کجا جان بعد چه جور آره میدونم جو جو ها اسمش چی جابه الخليج مراکانی کالیفرنیا آ داره کالیفرنیا اون طرف اقیانوس پس را میافتم درک نمی کنم که چرا هر بار میاییم لبه این سخرای دریایی یکی میخواد یه ذره بره خب لذت ببری از این منظر این زیبا چچون لذت ببرم وقتی خانوادم بیشم نیستم نه نه فکر رفتم به اونجا رسر بیرو کن سری قد به این شرک آخرین بارمون باشه رفتیم اونجا لطفا صحبت یا سفر دوباره به اونجا نشام آخره اش بری بجبورم برم دوری تو؟ خواهش میکنم آخر اخیری براشو تای شده حس خیلی بدیه این حسو میشناسی مایی آره. آره خیلی خوبم میشناسمش حالا که حس میکنم خونهواتم یه جایی اون بیرونن خوشحالم خوش میگونم مایی تنها این سخت پیداشون کنم درک هم کن بیاین با هم پیداشون کنیم لطفا آره بابا تو می‌تونی ما رو ببری اون طرف اوکیانوس بگه نه نه ولی یه نفر می‌تونه آلیه آلیه آلیه آلیه آلیه شور آ خوردن مارم تر میگم حالا بده سموت و خوکنه جریان آب کالیفورنیاش از من بپرس حالا واش چی باشی آلاچو پیش کردن مار لینکه <تصفح> میخوای بالا بیاری یه لوتچی بکول برو یه چای لاکاپ یه نامه خمشو بریزش و دور دورا دور ما به اسم میگم خزه‌دادم به ماهی‌ها از ماهی به ماهی تو میریم جومبل پدر و مادرام تو جواهر کالنتی جواهر مرا کالیفورنیا اینو که اینگو چجوری میخوای پیداشون کنی یه फैशनو فراموش نکردی درسته که یکم باهو فزم مشکل دارم ولی چجوری که یه دم یه دونه بو یت رنگش اون رنگه بدلش اون رنگه آبی باشه شاید تو مطمئنم به واسه دیدم پیشا سامش اون نظره من اینه که رفتا به اون دونهش باید یه بار انجام بدیم درسته بزرگوار یه بار ولی که موناکو وردیه آلمانیان چه حالتن بزرگوار یه دم تو حرکت یورش باک یادت یو یو یو ننه ننه علی دیر گفتیم قزوشون رو دادم ها این چه شختی آشناس مامان بابا داری داری داری صبر کن صبر کن مامان بابا اینا چه سرش داده نکنه تو واقعا فکر کردی اونا همین اطراف دارن شما میکنن منتظر ورود تو ها من من نمیذونم من فقط از این رو میشه فهمید مامان بابا بیا تعال بیا مامان بابا این صدر رو قبلن هم شنیدم مطمئنم این صدر رو قبلن هم شنیدم آره با خوش من بودم چند لحظه قبل گفتم خبیش میکنم مامان پا بای من ندیدی؟ اسم مامان پا بای من جنی و چالی جنی و چالی؟ چی؟ جنی و چی؟ اسمشون همینه اسم پدر مدرم جنی و چالی دوری باشد جنی میشه یه لحظه سرخونی تا یه نقشه ای بکشی؟ Tani, ti bu na shodi, ta ah, në fa bashkiti, ta çditë buzërt. Tani, doli. اس صاف گوش کن. وقتی می می مکان تازه می اصلا درستی. این همه جلب توجه کنی بیفک. یه ذره درکم. من اسمشونو متوجه شدم. جنی، جان این خرچنگا بچه این محلا. یه حسی به میگه اونا بدی نمیگن هست. ممکنه موجود خطرناکی رو بیدار کنی. منصورت موجود به چشمه درشت و دندونه تیشه. خب این که گفتی دقیق و بی‌نقص بود. ولی آره، یه چی تو همین مايه. خلاص این که آه... سلام بیدار شدید ببخشید آرزم خدمت بزرگوار خودم که قصد مزاهمت نداشیم <تصفيق> توپ بچه آفتر بود اینجا الانم میریم اگه نخوریمون خب تم دارم نکردم موسیقی <تصفيق> Oh! Dori, dori, dori. Jamë shat, un hyra don ballomani. O, u shfaqni. Oh! Oh, Jenny, Jenny Charlie. Jenny Charlie. الان الان اسمشون یادم اومد های باید دوباره حرکت کنیم بچه ها جایی درد نمی کنیم خدای من نمود تو حالت خوبه کجا الان نداری لطفاً آه نه نمود چی شدی؟ خانه ما نمود اصفم نمو. مرا به باش نه نه نه آه خدای من نمود تو حالت خوبه گفتم الان نداری کمک نمی خوام چرا؟ ولی این من, من, من می خوام کمک کنم می, می, می, می تونم الان برام, برام یه کمک کنی می خاید نخ... به ما کمک کنی باشه برو یه گوشه وایسا تا نگفتم همونجا منتظر باش اگه تو این کارم گند نزنی حق داری از اینکه خواهش کردم برای پیدا کردن خونه وادم کمک کنین متاسفم منم جبران می کنم خوب باشی میرم کمک میارم نه ما حرف زدم حرف زدم این کورو بلادم با کمک میام نه ما آهای صدای منو دارین کسی اینجا نیست سلام جواب سلام آجوزم سلام سلام من سیگاری بیان هست سلام سیگاری منم داریم کمک می کنم لطفاً به ممه بپیبنی چشمالاً دیم پیبنی باید شگفت های آقیانوس آران را کشف کنی و حیات شگفت های دیگی در دیر آنجای گرفتی باید آنجای گرفتی Sigorni, sigorni biur kojai bas. Dorin injai koma pida sho. Dostam sigorni beymun koma. Çe ka futboleri konda ara asi asi. Na na na na na korna ko dobare na. Uno bayad ba khodemon dobare. یارانه باشیری هرجور شده میاما تو رو پیدا میکنیم احساس خوبی زندگیه داری عالیه خوشحال میشم شاه ما نجات داده درمان کردن خاطر رهایی از حساسیت موضوعات اجتماعی مائین نمو مائین کجا هی چمی چلی کمک مائین کمک کنم مائین درخواست برخواست رو به ترسید. درخواست دادم خانم هر روز خبری نشود. آخه چه میستری؟ دوری. دوریش دوریش خوش دور باش، نامزد دو باش، دوری. آره آره، حالم چه مراتبه؟ تو اینجوری نمونی. دور. خوش باش. آره آره، حالم چه مراتبه؟ هی تو با این طرف او. سلام خوش شده میبینم اسم اندرین اسمم هستم. هم مریضی آم. چیه مریض مگه پس من پس بس جور دارت اینجا آه نه بابا اینجا نمیمونم تراشه همه همینو میگن ای وای ما اینجا موندنه او. نیستی میریم بیرون بیر کنین حرف رو او. این چیه او. اون چیز خوبی نیست میچسبونن به ماهی هایی که به درد ما اسسه نمیخورن عادت مونتقل میشم به زیستگاه‌های دائمی توی آکواریوم بزرگ تو کلیولند ماهیایی که اینجا میمونن برمیگردن اقیانوس ولی ماهی‌های کلیولند تا ابد مونده گا کلیولند <كلمان> <بارد> نه من اونجا برو نیستم میاد دارم به خلیج مورو تو کالیفرنیا که خانوادهمو پیدا کنم منظورم منم همون جاست دیگه با اساسه زندگی دریایی تو خلیج مورو کالیفرنیا باور کن اصلا بچه اینجا پس خیلی به اون نزدیک شده تو بچه کدوم نمایشی چی مُچ والے تو نہ مے عشق کوچوس مَنو ببرون جو آ درخواست خطرناک بچے مگر انکہ نہ این دیو نے یہ بریم هنگ من میمیرم واسه دیونه بازی دید. حالا که فکرشو میکنم میبینم یه راهی هست که کمکم کنم به خونه مادرت برسی فقط کافیه بذاری این ایده فکری خوبیه خوشم اومد چرا به فکر خودم درسی نه, نه نه نه منظورم اینه که در چشمتو بدی بهم به منو به جای تو سوار کامیون انتقال میکنن بعد تو میتونی برگردی تو مؤسسه و خونمادرتو پیدا کنی کافیه بچزمتو به من بدی اه. کدوم آچاس اوه یه چیزی رو با اون خب اون همون بچز بس دیگه خیر اوه نه ببخشید اوه حافظه کوتاه مدتم بی یونا چی؟ یعنی هلون نمیدونی در مورد چی حرف زدین؟ نه، لوسکو چوبو گفتم عادی چی بود؟ بس. پس میشه برچسب تو بهم بده. آه، آها، نه، من ازش خوشم اومد. آخه خیلی روانی کردی. کی ویولان؟ کی ویولان؟ چرا این اسم آشنا؟ سالا چرا میگی؟ تو نگی اینجا بمونم دوباره منو رها میکنن تو اقیانوس. من خاطرات خیلی ناخوشایندی از اونجا دارم. دوست دارم توی آکواریوم تنهای تنها زندگی کنم. آقای خدا. برعکس بابا چه حمی میخواستی دستتو بکش لندهور واش دادی با شرار اینجوری بلند کن ببین اگه هم نخوستی نرو مامانم توزی آوردن اینجا نقشه اینجا رو ندارم نقشه فکرت خوبیه اگه منو ببری پیش نقشه میفهمم خونه وادم کجا میبرین باشه اگه تو رو بهشون رسوندم حاضری در قبالش چی به؟ من که چیزو با عرضشی ندارم هنکه آم ولی این برچس با میدم بشیم این شد حرف حضا مطمئنی گفتم بری یه گوش آمان تظر باشه گفتم توش گرم نزنی؟ آره بابا کدایی گفتم؟ بعدش با قلیم شکسته آروم به سطح آب اومد اونجا بسید نفر بابا باقیشو دیگه دیدم یه سوال پرسیدیما من اگه اینی که میگیم گفته باشم که البته هنوز مطمئن نیستم که گفتم فقط میخواستم ازاش تعریف کنم منتظر بودن اونام یه گوشه آدم رو قوی میکنه فقط نمیدونم چرا بهش کفتم گن نزنی البته منظورم اینه که خب آه تخذیر منه ای خک برزر من دوزیدن دوری و بردنش تو هر جهنمی تخذیر منه ریستوران نبرده باشنش ای بابایی بچه هست ببم فکر کنم آنه بابا مشغول خواب بودیم آ. چه خواب نازیم و تو هم میدیم همون خوابی که رو زنگا خوابی دیرم آهای گفتیم عجب خوابمون دویه آهای گفتیم خواب مرد علاقه یه آه. آها برخشیم نه نه نه نه نه نه نه ما میخواهی نه سرم شیرهای دریایی ذاتا شکار چند هر لحظه ممکنه با یه پره شکارت کنند آه اما هی کلم اگه نیسته؟ اتفاقه اونم میخوان اینجوری فکر کنی حالا پاشه سرم بیار بذار من صحبت کنم سلام بزرگ با دوستم رو گم کردیم اینجا رسطورانه؟ آرازیم نه رسطوران نیست خدایی؟ اینجا بیمارستان حیوانه است سیگار نیویور میگه بعد از این که نجات پیدا کردین و مداواه شدین بعد رحا سازیه آره سشوکه آجاد میشه من به انگل دماغ کنم کمخونی داشتم بعد از زرمان آزاد شدیم آه خوب قدرشون آره بابا تارین نیست نیست نگرد <تصفيق> آه چرا آخه چجاله اون کار دیه چقد بدین نبیه اپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ تایس کار دارم لازم نیست نگران باشین این چه مؤسسه صندکی دریایی تو خلیج مورای کالیفرنیا اس حق بودی اینقدر سر مس کردن چه 해요 هیچ شی ممنون بابت کنایهاتم آلی چجوری بریم داخل شما میخواین برین اونجا به شدت آخه دوست گمشادم اون غریبه تنهاست درسیده نمیدونه چیکار کنه اما گیر راه بلد خدایی چیکار کنم بابا خوش به حالشون عقل ندارن راحتن نار رسیدیم هنو بابا کرم کردی من می دونم اصن که کنانا می هن کنگور سرنویشم رو به هم رسوندن من یه بار هزارم میگم سرنویش نبود آ قبلا میگه گفتم سرنویش منو به رخشو که استرس داره هر شب از این بوبت که خونه دادامو میبینم خوشحالام میدونی چن وقت ندیدمش نورخه من بابا، حافظه کوتاه مدتت بگیر نگیر داره لطفا تو این ماموریت اینقدر فک نزن میذارم از بوجی بذار تو سکوت ببینم چقدر عجیب میکنم اخره سلام چی شده ها انگار اونجوری یه رخشو لقشه... وقتشی بدی اون نقشن رو بخوری تا جای خونوادت رو پیدا کنی بعدش هم من سوار کامیو نمیشم گرفتیم آره حرس نخور چشمشن یه چه هشبا دوباره فرار کرده وای چقدر نمایش کنی میشه توی یه رو سمام این پارکو گرد یکی امتخاب کن خب بابا بیدی خب به بچه ها به با هر جوری پیدا شمان آخه قرار رو هشبا برگرده با اوگیانوف الان خودم بیامونجا عجب بودی. یه جور دیگه. باشه باشه باشه. با بی شروع میشه. بخش کودکون اوخ یانوس آزاد. بخش کودکون، آره کودکون. کم میگیرن. نمیخوام یکی دیگه از طاهامو بخاطرش تو بدم بره. پس 8 با نیستی، 7 وای. شاید حافظه‌ام گیر داره ولی ریاضی‌م عادیه. جوی بیس و برس. خیلی خوبه، رو سفر به اعماق. هی میگو کو صدا. هی میگو کو صدا. بابا یه صدف اینجاست افرین داری تونست یکی دیگه پیدا کنید بقیم آره نفس مامان کم کم داری وارد میشی داری هی نگو کن صدف پس خونمون اینجاست آره درسته افرین دارید من صدف دوست دارم ما هم دوست داریم قشنگم برو واسه مامان یه صدف دیگه پیدا کن من ابشوشو خیلی دوست دارم بوسه مامان. آ مامان. صداف بنف، صداف بنف، شاین تو رو بره خونم صداف بنف. آخی آکیو نصف نمایش کو پر از صداف بنف چه. نه، یه لحظه مامانم یودامم صداف بنف دوستوش. خیلی نازشه. بچه‌م رو نذار جلو آخر مطبم می‌کنه. بابام ديجان سر بهش بوده. اگه بخواد هر چه سریع‌تر پیداش کنم. اوه. مرکز من ده. کارول هستم. به نظرم هشت پای فراری رو پیدا کردم. گنج داری بچه‌؟ لوراریم خوبه. سارنوشت. اوه سارنوشت. هی هک، نارچو. خودت سعی می‌گی من دریم چوس. تو غلط چتی می گپ نوشته سارنوشت. سارنوشت نوشه با تو سطل. منو تو توی سطل, سطل. انورات. ولی ما میرم تو اون سطل خداو일리. اوه سلام رفقاتم بالا خونه وادم با می می‌گردن او فکر خوبیه نقش مرده ها کوچا تو ای روفا یه پلف بزنم شما چه جوری می‌تونین انقدر پلف بزنید 해요 باشو یه چیزی تو رو سرست وای مهمونه بایدیه ما بچه های عزیز خیلی وقتی که با ما سونگونه ای نادر و کمیاب از کوسه نهنگه ما اسمشو گذاشتیم سرنوشت سرنوشت؟ واقعا سرنوشت نزدیکمینه بچه ها موقع اجابه جاییه کم مشکل داره او او نهاش داره میاد او سرنوشت؟ او سرنوشت؟ توی یه مارو او سرنوشت؟ او! با توم سلام سرنوش من دوریم باشه با تومیام ببخشی سلام ما کیه مگه حبابا بیام حرف مزنه حبابا چیه ماهی هم خونوادم رو گم کردم خونواده تو چطور گم دو کردی؟ دوستانش طولانیه ولی سیاد یادم نمیاد آخه چه ناراحت کنند چه بچی اوه آخ، شناگر خوبی نیستم چشم خوب نمیبینم نگو، به نظرم شنا طرف ندارم مثل ماهی ها سرنوشت ممنونم no, no, no. خواهش میکنم سب کن، سکرار کن خواهش میکنم داری؟ بله؟ داری؟ بله؟ داری؟ بله؟ آه، داری؟ بله؟ من را تو دوست هم بودیم نه no. داری منم سرنوشت من رو سر میشنستی؟ قلیو میشنستم یادت بچه بودیم از تو لوله ها بام حرف بزن. واقعایی؟ آو تو خیلی خوشش بس میدونی اهل کجا؟ آره تو اهل نمشکای اقیانیس آزاد آزاد پس از خونه بادم الان اونجا با یه درمه رو میوری اونجا؟ آه برای نحن سخته که این اطراف جا بچشه نیش انقدر سر و صدر نکنی؟ سردرد وحشت ها کی داره؟ آه اون چیه؟ اون همسایی همه بیلی وقتی آوردن این سریع صدامه میدونم راجع به من همسیدن خیال میکنه نمیتونه از رادار مغزش استفاده کنه ولی دکتر را قفتن با تمرین میدونه دروق میگه تمرین هم کردم نشون مغز دیگه چرا کلای بیلی باید صدایو بفرسته که بازگشت اون صدا کمکش بکنه چیزای تو را پیدا کنه ولی صاحبا با تمرین میونه یه خوبی نداریه دیگه مطمئنم راجع به من حرف میزنیم بابا تنبیل کردم نشد باور کن سرم اون دیرون ضربه شدیدی خورد ببین چقدر ورم باید کرده باید کلت بزرگ باشه نه سلامتی یه لحنگ صفیدی داره مغز آو! مثل قوی تن این, این اینک دنیا درسته؟ اینک چیه؟ این لحنو میگیری بعد یه چیزایی رو میبینی من اینا رو از کجا میدونم تو هم خوب میشی اخ تو اینجای قشقر من به پول افتادم. وردا به پیش نشی، ما باشا فرات. کوزیک بدم، من میدونم پدر و مادرم کجاونا توی اسمش چی بود؟ گفت یه اقیانوس آزاد. یعنی ساز آزاد. اقیانوس آزاد، میدونم کجاست. نموشگاهی کنار اسمش چی بود؟ فکر کردم. اگه میخی به نموشگاهی اقیانوس آزاد بری کافی از راه لوله ها بری. راه لوله ها عالیه. آره تو برمی پیچ بیچه بعد مستقیم برید رسیدین جون چقدر بد مصیره هنگ تو تو فهمیدی چطور باید برید آره عالیه بریم من باخت نمیام آخه چا نمیشم باید تنها بریم امم ا ام اینطوری که آخه نمی‌تونم یعنی آدرس یادم نمی‌مونه حالا چی کار کنیم؟ مشکل توه، من به قولم عمل کردم تنها راه پیدا کردن خونه وعدت همین راهه البته قبلش برچست و می‌دید برم ولی ببار. هنگ شعور داشته باش تنهایی برم که موله‌ها منگه می‌شه مشکل من نیست برچست نمی‌تونم تنها برم بتاسفم ولی راه دیگه‌ای نیست راه دیگه‌ای نیست <تصفح> راه دیگه‌ای نیست تلاش کن دوباره عزیزم میدونی تو زندگی انجام هر کاری راحت نیست درست نمیگم چولی آره حق با مادرت وقتی دیدی انجام کاری براش سخت بود باید تسلیم بشی ای چولی شوخی کردم بابا خواستم یه کم بخندیم خیلی خب اینم از این نباید شوخیا رو جدی بگیریم دخترم حضرت من عزیزم دیدیدوری همیشه یه راهی وجود داره مام میو پپی مام اوه، نه. بابا میگه همیشه یه راهی وجود داره. چی راه دیگه ای نیست؟ دقیقا مثل سازه، سازه دقیقا مثل راهی انی سا سا. مطمئنم اون ساختمانه گنبدی شکل، البته یکم ریس میبینمش شبیه سره بی. چی گفتی؟ همیشه راه دیگه ای وجود داره. دنبال من بیا، جای قهوه و سازه. اوکی، سازه. بچه‌ها، بچه‌ها، شما که میدونین من اونجا نمیتونم شب نکنم. من که نمی‌فهم، الان شما دارید چی کار می‌کنید؟ خب معلومه داریم صده‌ش می‌کنیم، داریم صده‌ش می‌کنیم کیه صدا می‌کنید؟ معرفی می‌کنم، پیشون به کی هست؟ ترباز؟ نه، نه، نه اصلا حرفش هم نزن که بخواییم با اون از طریق هوا بریم اونجا ولی از زحمت شما بزرگارا ممنونم منظورم را یکی بشه از طریق آب بریم اونجا مثلا با شنا کردن اینطوری وقت با عرضش دوستتونم نمیگیری ببین دوستت توی قرانتینه است ماهیه یه مریض رو میبرن اونجا بله و فقط ما به که یکیه دونه میتونو بریم اونجا <تصفح> سلام بکی ببینم بگه مرز داری روانی دردر در آخه تو کانا مو شق شده بابا بکی عزیز این تا ماهی مهرگون باید وارد درامپیده بشن بکی جان امرت سرت خلما ته جناب بکی ارازم خدمت شما که اخ بازا میزنه ی تختش کما فقط باید خرش کنی رفیق چیکاکانا خرش. خرش کنی تو چشمش نگاه کنو بگو اورو لاموت تماهنگ میشه حالا تو چشمش نگاه منی ای نمو باشه می‌رن کاری من حسانم بو یه نقشه جدید بکشیم. باید از طریق آب بریم. اونم با یه موجود با شور چون این پرنده واقعا ادب نداره. اشکال نداره بابا. دیو بشی می‌ترسمت اولی قاتلمشو می‌کنه. الان فرصت نداریم بابا. باشه. آب. خب. اینا رو چرا چشش اینجوری؟ کدوم چششو باید ببینم؟ جفتش یه کیره ف. بگی. آ جواب داد، نا خب بگی، دقیقاً ما را چجوری میبره اون بالا؟ ها، سؤال خوبیه اصلا، یادم رفت جرالد؟ جرالد؟ اگه سطلتو بدی به همون اجاسی میدیم، بیایی ریست داره؟ آره، جرالد، اینجا جای توه پسه هم آره آفری، بیایی اینجا دودماشتو میتونه قهر ماست بابا این چرا؟ ما ما چه شانسه وقتی چه چه تام نری؟ لطفت ربو جراد. ها، این به فلسه زندگی روی سنگ خوشم. آمده این. حالا که کی داره؟ ما انگار آغلانه نیس. چرا همش راز میشه از راهی اخر ما قانه بریم؟ موفق باشی. دبین هر وقت من خوابم آدم میبینم با یه شیرچه بوسورهت پیشون علامتی زمانی داد. که علامت دادن هنوز معلوم نیست رفتش نیست وقتشه نه با یه سر نمیش علامت بده میگم م... م... م... دوری نمیفهمم چرا همچین کاری میکنی چه کاری این همه سختیو تحمل میکنی واسه دیدن دو تا ماهی اگه من جای تو بودم زندگیمو میکردم کسی ام برا مهم نمند مگه دیونه ام میخوام با خونه وادم باشم ولی من نه میگم خوش به حالت نخوفه داری نه هیچ دردی نه عقبی ما روز بعد پیشت هنوز معلوم یعنی هنوز وقتش نشد دیگه مونده دیگه وقتشه برو ولی من خلاص بشی شدیش باش شماره ی من نمیخواد بکونی برو حالا حالا برو برو من تجربه ببینم برو برو برو اهلا ماشي باشه سردوش گفت تو بلایی نمایشگاه اوکرانوس آزاد رو دنبال کنی من که نمیتونم ببینم باشه خودت پیداش کن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 احسیزم چیزم شده با منی؟ ببخشید الان بهت میگم هر اینجا بکی، هر جا شد پیاده ما کنده داشت یکیم صفت خوب، بزهر شاید تن بگید چه بایی پوری میگرده بیفهمه نمو، حتی نمیدید کجا رو نگاه کنه آه. آه. از اینجا خوبه اینجا، خوبه اینجا دلومون کردی، بزرگ بار کجا رفتی، بایسته خیلی خوب دارم میره یه جایی ولی سوال اینجا از کجا میره تو دون طرف برم تابلو رو میبینیم آه میبینی. دارم میگردم داماله چیزی که من به خونوادم برسیم خونوادم آه قوی تن این اینکی دنیا چقدر عشناس چه رو عشناس یا بود این خاطر این دیگه سه ای هنگ بریم اون طرف چپ برستم تو چپ, چپ بکی بزرگ بار عزیزم سیدوتو نیست نو با با با باشه باشه باشه یه نقشه جدید نزدیک میشیم به بکی تا صدامونو بشنمه به <تصفح> نظر نمیسته ازیدو ببینه کنیم نمون فرض کن بکی گم بشه اطماعش با اطماع کنم اطماع کنم به اون بی مغز روانی اطماع کنم من به بکی اطماع کنم تو به بکی جونت اطماع داشته باش نگاه داره لیبان میخوره خدا بکی بکی با با با با خب حد دقیقا دیگه تو ست زندنی نیستی؟ یا داخل بخش قرنطینه به زودی نمایش بچه سموره های آبی شروع میشه با تشکر از سیگر نبیار ببینم که میخواد سموره ی آبی رو بشنسه توان دنبال قوی ترین این این دنیا میگردم آقا آب؟ سموره آبی حالا زود آبی. هم دیگر رو بقل کنی آقا قل منم بقل میخواد به اوگیانوس نزدیک شدیم یا نه؟ احتمالا نزدیک شدیم شایدم نه اول یه تابلو اونجا ساید روشی نرشته قوی تری اینکا یه جهان چی داری میگی دوری؟ چرا باید دنبار این تابلو بریم؟ خب به چون یادم نیاده؟ نه نه نه نه جون مادرت نه نقشه این نه بود آه؟, آه! <تصفيق> ای دردر بست داری الافتو نیستم باور کن فردس و کامیون میروه و منم داخلش باید باشم برچه از مراد کن بیاد نه نه اون توبلو یادم چه چی یاد. این که مرادت داره بیشتر یادم میاد و حافظم داره بیتر میشه نه حافظم تو هاگونه تو هیچی یادت نمیاد مطمئنم باست همینه که اول خانواده تو گم کرده خیلی خوب باشه آرومتر بحث میکنی لطفا مادر چاشمه بده. تو فکر می‌کونم با این که سه تا قلب داری ولی شورت تعتی. من سه تا قلب دارم تو یه دونه‌ش هم مشکوکم. سه تا داری؟ ندارم. داری؟ ندارم. داری. از کجا می‌دونی؟ دانستنی‌های جالب. حشپاها سه تا قلب دارن. وظیفه یکی خون رسون به تمام بدنه و دو تا دیگه فقط به آبشوشو خون می‌رسونه. باشه، خوبه. می‌دونی کسی که سه تا قلب داره و یه شورم کنارش داشته باشه تا به این نگه دیگه خون به بدنشو گم کنه؟ معنی اونارو گم نکردام. Henk Henk Henk Henk Henk në, Henk, doonbali Henk bërda Henk Henk, ha, Henk Henk Dast Oh, dast Henk Oh Henk Henk Buzo Henk <laughs> Oh, Henk kujayi, oh Oh, mishu kumak em kone, ben doonbalim, oh, oh. oh. oh. Oh! Ku maj kam furat ku peida ku franchi. A furat ku berim. Ha shpa bodare na hafta bodu 2 hafta bodosh hafta hafta hafta bodu. Eto sen shavai shavto pare doroste. Ai, pechomai, ko yadasin ju berin. Tu chi kar mikoni? Na na na na shichi. Na shir de ketom mikhan khandan manu miyadun chaksarab. شرمنده. چی من که های شرمنده داشی یادم نمیاد تو. آو تو رو مراقب باش. چلو تو نگاه کن. شرمنده بوبوی تو شدام نمیونه. آسلام نباید شرمنده بشی قشنگم. میدونی این موقعی چیکار کنی؟ فقط باید شنا کنی. آره. مطمئن نمیادت میمونه چون ما Maha bërra... Ma bërra shi uh, ee ahenqe me sazim Hemi njuri shena kën Hemi njuri shena kën Shena kën Shena kën Hemi njuri shena kën Shena kën Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha من مدرم اون آهنگ رو یادم دادم بعدش ما هم خوندیمش فکرم کنم آهنگ سخته زیر نمید چه آهنگ؟ همینجوری شنا کن هنگ من فقط باید شنا کن چی؟ حرفش هم نزم تو این جهنم حرکت که قلیم اوقت چه؟ چو گوش کنم من هنگ میدونم خیلی ترسیدی ولی قرار نیست تسلیم بشی دنبالم بیا همینجوری شنا کن فقط فقط چه نکن آه آه ماما نم آ اینجوری از اینجا خارج میشین با من بخون دیگه هنگ اینجا کجا هست اینجورم میام آبایی اینجورم میام آبایی اینجورم میام درمانده بی خیال بابا همه از این کارا میکنن فکرشان نکن هاونک هاونک تو اینجایی تو از جهنم نجاتم دادی راست میگی ها برای من این کارو كردم هرچند خودت مويز شدي بديم اونجا ولی اگه نبودی معلوم نبود برسیم اونجا رادور مغز رادور مغز قوی تن این اینک دنیا پیداش کردیم نه نه نه نه اونو پیدا کردیم به اقویانم سو ازاز خوش شما گرگش. ار تو با سجیه دست خونی که کارشو بلد نی. ببینم در مورد دوری حرف می‌زنی یا بکی؟ della parete dei tassi. Merhaba min. Ya. Ora baba. Gerçekten ben çok nگرانım. Onu da nگرانım. مصمم هم اینکه اینجا بود یه راهی پیدا می‌کرد. نمی‌دونم چجوری این کارو می‌کنه. فکر نکنم بدونه بابا اون فقط عمل می‌کنه. پس ما الان باید فکر کنیم، درسته؟ اگه دوری بود چیکار می‌کرد؟ اون بود چیکار می‌کرد؟ آره، اگه دوری بود چیکار می‌کرد؟ از موقعیت استفاده می‌کرد، بعد ارزیابی می‌کرد و جزئیاتش رو بررسی می‌کرد. بابا، اینا چه کارهای خود آره اینا کاره خودمه اون به یه چیز دوبار فکر نمی کنه میرسه رو اولین چیزی که به چشمش می کنه آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ Ti kehrasi. Na pastujesh. Na pastujesh. Na pastujesh. Ale xube. Xubam. A keti bu çikart. Dorakiya. Ara. از دیدنت خیلی خوشحاله از دیدنم خوشحالی منم از دیدن شما خوشحالم کن سالی بیشه ما کسی عرف نزدم چه خبره زیاده ولی ما باید بریم بمونیم ماخمون خورده از بسان حالا چرا سم... اینقدر عجله تازه رسیدین یکم بمونید از خودتون بیشتر بگید بشتاسمون ولی منو پسرم باید به قرنطینه برین بذر داشتن خیلی خوبه خب این که معلومه بعد طبیعتا خانوادا ندارم ولی قضیه ما با یه کوشگاهی زیبا قرار پیش اومد اصلا باشا با نصیحت تا کوشگاه یا اعتماد کنین اونها طرفو طلب جزی براتون مهم نیست بس لاش خدام هر چه کن, او کن؟ اون بی هدف قلبه نازنی نموشه اخسله اگه دوریتو ولی برای جز نظر هایم مامانم شیتاب خوش دنیای رمضان ده اینا هست خیلی خوبیتم ملام تو کی جو لیوانی ز پسمت این تو نایت مووی چی شده هشت تا روی سه قلب میباشه چه جالب نمیدونستی تشکر کردی که قبلان ممنون میشم ambo varam nemesh Okhre ramun injas bacche badesh bayad be kamion beresi vaysa vaysa ey chizi bana dashtam barchas doroste barchas می‌دونی هیچ‌وقت فراموشت نمی‌کنم آ، کافیه سه بار چشتو رو هم بزنی راحت فراموشم می‌کنی. ولی فراموش کردن تو برام سقته. ولی ممکنه. ام. امید دارم خونه و دادم اونجا ببینم. یه یه چیزی ببینیم یه چیزی بهتری. اومادم xhube do mide didar vay yani uno kujan uno kujan basha basha vozmi kham oh oh سلام، پدر و مدنی ندیدین که من هم روشون نباشن؟ ببخشین ذر و شواری ندیدین تقلیمان هم سل و سال خودتون البته شما یه هم و موسینترین دوست کردین باشه مملون سلام، کسی ها میشنسید که سالا پیش بچه ای که من باشم گم کرده باشه؟ نمیتونم دقیق چند سال پیش خیلی عجیبه اینگاه عجله داری اوه بود جالاتو نگاه کنم شرمنده عدف مائی حیوانات نجات داده شده, شده تخت مراقبت قرار میدونی و بعد برمیگردن به دنبال خودش صدف اینم از این هر وقت کم شدی دنبال صدف ها باش فقط صدف ها رو دنبال کن ما آسه قصد صدف ایناش کردی. خانه خدای من خونه مونه اینجا خونه‌مونه. مامان، بابا. خیلی خوب عزیزم. حالا تو ده بشمار. 1 2 3 4 5 خو سو مادی؟ با کی صحبت می‌کنی دوری؟ تو سکه اون طرف لولا هست. Moshkiri peşin e mi yad? <Gülüyor> من گمشون کردم تخصیر من بوده برچسبت اوجازم برچسبت گم شده که تو قرانتینه نیستی قرانتینه؟ آره آخه مایه های آبی رو اونجا نگم میدارن مگه نداداش آره قراره ماهی های آبی تو گریبلن نواشگاهی بخصوص داشته باشه فرداسو به زود با کامیان میبرنشون اونجا چی؟ یعنی یعنی خونه بودن برگشتن بعد قرنطینه که منتادلشن کلیبلند ممن که, که اینجام اونم نمیدونن اینجا باید بره پیششون نگارون نباش راحت می‌تونی بری به بخش قرنطینه این لوله به اونجا میرسه من نمی‌چونم این کارو بکن چرا اوخ اگه کسی باهم نباشه فراموش می‌کنم کجا می‌خوام برام باید یکی کمکم کنه آخه یعنی اینجا گیر افتادی مشی بس کنی داداش اگه واقعا تصمیمتو گرفتی به هیچ چیز توجه نکن برو اوه خوزه‌مان. میشه میشه بگی بعدش به یه داز کدوم طرف برم؟ البته دو بار به چپ یه بارم به راست. آسونه. سه خوب. دو بار چپ یه بار راست. دو بار چپ یه بار راست. همینه. فقط یادت نره.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 ترام کجا میرم؟ چرا یادم نمیاد گم شدم بابا یادم بیا نمیخوام واسه همیشه اینجا گیر کنم. حالا چین خاکی تو سم کنم؟ نونه ها کجا؟ نونه ها دوستا اون طرف نونه ها تو سم. بازم شنا کن شنا کن شنا کن. آو بست باشه. اعتماد کن نمیذارم به چیزی بخوری. دیوار خسته <سخن> شدم چرا نمیتونم خوب دور بزنم؟ ببین اگه اینجا نتونی دور بزنی تو اقیانوس که عمرم بتونی تمرکز کن دیوار <سخن> Kunturi Bili, radeur mqshtu kërru Ha, oon kër nëmikonë Mishe Duri, bëga Oooo, dërst mëshe, bëjom Desta, sërëm berda Nëaumidem, nëkam, Bili Bëjom, Bili, če n'lishe, bëjši gëfti Përght tëmerkaz kërru Mëkham, nëaumidem, kërru Bili Aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, aho, Rafaga, o rafaga. Ha, çi e çishedi? Ya çizayi midinam. Tradisjon. Eyvallah. Mitu lab garanti nare bebinam. Binazire. Mitu lab habe çizo bebinam. Dori am minena. Mici ne turu bebine. Sen de geman havas yo da dostan. Sen mituni mano bebini. O nemitune hal nemide. Aşukhi kirdam. Begu be piçe be çap. Ora sen piçap. مستقیم نه مستقیم اونور راه صورتی هر چیزی که را تا اون جی اف او یه چیز عجیب میبینم باید یکم زوم کنم اوه بدبختی دیدم یکی رو تام نیستم چی؟ مگه چیه دارم میرسم تو دوری وای نه تو این طرف حرکت کن چی کدوم طرف کدوم طرف طرف راست راست من راست خودم، بایین از صاف رفتم تشون نه، داری، جور بذار به آجی، بایین بگرام داریم یه سمت ما؟ نه، نه، راست نه، بایین، نمیتونم ببینم داری مالی داری، تو حالت خوده؟ ران دور یوزنده سند سند می بالا رفت. ما چی انجام کردیم؟ چطوری آخه؟ یه صف دیوونه‌ر دیدیم که یه ریس حرف می‌زنه. او آروم عادت فاصله گرفتیم اومدیم داخل لیلهوش رو کردیم به جشت. دوری این سنشی. شکلات آسه چاپا بهم چه چیزی نیست؟ تازه این چی موتازنی. شکلات خوبه؟ لیلا نه نه رو اینو. چنیدا این سر من یاد خاطره تلخی میندازه باید از اینجا بریم من که میگم از این طرف بریم دوباره بیایین و وسیس ساب کنین ای پدر مادر من اینجا. کجایی؟ پدر مادر تو پیداش کن. خب نه دقیقاً نه یعنی هنوزنا چطور میتونم کجاست ولی اینو نمیدونم چطور باید برم اونجا اما الان میدونم که دیگه تنها نیستم اول میریم سمت قرنطینه روسی با یه حواش نشدم اصلا حساب نداش ولی قلبای مهربونی داشون منو برد به محل نمایشگاه. نمایشگاه. دوری یعنی خوندام دوست دارن منو ببینن. چی؟ چی نباید تو رو ببینم؟ چون من گمهشون کردم دوری پدر و مادرت از دیدنت خوشحال میشن اونا دلشون برای بی نهایت تنگ شده واقعا؟ دوری میدونی چطور پیدهت کردی؟ گار یه صدف دیدی؟ گوشماهی نه. بود؟ جاندار نه. بود؟ نه. یه چیزی که نمیدون تو بدتری وضعیت ممکن بودیم که یه ها نما فکر کرد و گفت اگه دوری اینجا بود چی کار میکرد؟ چرا اینو گفتی؟ چون از وقتی با تو آشنا شدم به هم نشون دادی که چطور کارهایی رو انجام میدی که من تو خوابم نمیتونم ببینم دیوون بازی کلکس دادن به کسا پریدن روی عروسهای دریایی و پیدا کردن پسرم تو باعث شدی همه این اتفاقات بیافته واقعا نمیدونستم نظرتون اینه شاید یادم رفته نه یادت نرفته من بهت نگفته بودم عزیزم بابت متاسفم ولی دوری به خاطر همین ارادت چیزی نمونده خونه بودات رو پیدا کنی وقتی هم پیداشون کنی تو می ری خونه اره نما همینطوره شاید هم هیچ وقت ما رو یادش نیاد <تصفح> ای چندتا معمول دیگر رو باید بار بزنیم اون فقط همین یکی مونده قدچه اگه زودتر بار بزنی رفتیمم حبازه باشه حبازه به چی باشه آو! به این باشه خب بگه فکر کنم رسیدیم سلام همه قارانتینه آره خودشه ما تو قارانتینه ایم بدا و مدرم اینجا پچه داریم نه نه نه نه پچه داریم سبت در با بهترین هستیم که با؟ خونه بادا زود باشیم بیایم بریم ببخشیم اوه اوه اون چی ببین اوه این کیه کیه این کیه سرستون تو طاریکه نو سارشو ندیدین دیگه اون سارشو ندیدین تو این سیدوی په میاد هایک هایک فیاد بریم داخل اون محفظه دیدیش چرا پدرمادری داره اونجا خیلو سی دقیقه وقت داری اون رو قادت بیاری بعدش من تو کامی بانم فهمیدی فهمیدام با. آه بسر برو دیگه نر نگردی مامان بابا مامان بابا مسلم با همه گی اسم من دوریه اسم من دوریه مامانی بابا تو بابا شی ما ما ماما? مامان بابا دولی... مامان بابا مامان مامان مامان مامان چی دیگه؟ بیا تو جلو من بابا اینو انتخاب کنه بریم دیگه بابا چوغی کردم بیاد بعد نخوره مامان بابا پدرم <تص> مادرام کجاست دوری تو واقعا بچه‌ی جنی و چارلی هستی آره درسته خودمم اون کجا اونا خب دوری بعد از اینکه تو ناپدید شدی اونا فکر کردن که یه روز تو رو اینجا تو قرنطینه پیدات کنن آره خب چوم چوم چوم پس اونم الان اینجا که دنبالت بگردن الان اینجا پس گوش کن دوری این اتفاق مال سال‌ها پیشه اون دیگه برنگشت جون من نگو میدونی تو واختی یه ماهی از قرنطینه برنگرده معنیش اینه که اون چی؟ دوری اونها مردن. اوه اونها مردن. اونها خیلی دو حالت داشته. آره بشون. کاریش نمیشه کرد. دوری اونها خیلی دوست داشته. آخرین اختهاره اگه کسی نمیخواد بره کلینیک. درستیدیم دونی نه گوش کنم دیگه خانواده این ندارم نه دارم نه دارم نه دارم هفته رفته نه تمام شد تنها شدم از فرقه کجا؟ این سنوه نارنجی چرا تو مسیر گیردن درم یه قرده نه دارم هشت کنید خودم خودم اُخ مامان بابا هند هند هند هند کمک کمک کم کن کمک خواهش می کنم یه نفر کمکم کنه هی میشه کمکم کنین من گمشون کردم من تو کیا گم, گم کردیم من من من من افاست اصفم ازیزم اگه یادت نه دیگی تونم کمک کنم <تصفيق> هی میشه کمکم کنین من گمشون کردم اونا رو میشه واضح تر بگی اونا رو اونا رو بابا گم گم گمک گمک گم گم گم گم گم <تصفيق> هش می کنم کونو گم شدن خوب شد شو همه شونو گم کردم هیچ کاری از دستم بر نمیاد لعنتی نباید از دستم بره چیو فراموش کردم یه چیزی یه چیز مهم چی بود چ... چی بود چی بود داره از زمنم میره داره از یادم میره چون تنها کاری که بلدم فراموش کردنه من فقط فراموش میکنم فراموش. فقط همینو بلدم کارم همینه باید چی کار کنم چی کار کنم خوده چی کار کنم؟, چی کار کنم دوری چی کار میکرد باید اطراف رو بگردم این طرف این طرف که فقط آبه این طرف هم فقط گیاه پس طرف گیاه میرم خیلی خوب حالا چی؟ بعدش چی؟ کلی گیاه اینجاست همشونم شبیه همن اینجا هم یه سخر هست دورو براش هم شنماس هست من چنموزه دوست دارم بیفایده است اینجا هیچی نیست جز جلبک یالم جلبک و چند هم صدف Sadaf, ma sadafti o sara. Hare, yë, yë, ne gash. Mot baybudam ki ne. So bergash de oyna. Hare. Ho detuni? Voqai ko'ri balu. Mama tu voqai iyi azizim. Baba, juri. Doruste, jani job. Men xeyli muttash. Na na na azizim. می دونم همش تقصیر منه می دونم بابت تمام این مدت که اذیت شدین متاسفم من سعی کردم همه چی رو درست, آه درست آه کنم ولی نشد ذهنم کمکم نکرد فراموشتون میکردم واقعا متاسفم دوری تو ریتی نباید عصبانی کنی سلام ببین دخترم تو کار بزرگی کردی واقعا تو ما رو پیدا کردی راست می تو ما رو پیدا کردی عزیزم باز اینا فکر می‌کنی ما برای چی تمام این سالا اینجا بودیم چون باو فرداشتم که یه روز تو برمیگردی خونه درست یا علی فکر کردم شما مرده این شما اول رفتیم بخش قرنصین دنبال تو ولی اونجا نبودید حتما از لولاغرد شدی ما هم رفتیم اونجا حق باب پدرت ما همه کارا رو گشتیم. کردیم و از همون موقع تا الان همینجا منتظرت چون... چون بودیم چقدر بد بودیم چه روزدار میگید برای همین هر روز می رفتیم بیرون ها صدفا رو با صد می آوردیم صدفا و تو پیدامون کردی اسیز تلا تو پیدامون کردی و می دونی چرا پیدامون کردی؟ چون به یاد آوردی تو به روش شگفت انگیز دوری به یاد آوردی من محفظ شدم اونم تنهایی عزیزم تنها؟ یعنی یعنی تمام این صورت تنها بودی؟ دوره بیچاره من نه تنهای تنها هم که نبودم مالین و نمو کسی ندید دوری کجا رفته؟ نه خدایی؟ پس ششه مرقل رو میده تو به چه ردی میخورد؟ ببخشی تومایی میکن بودم بله تومایی من بودم ببینید خدای شکر نگفتم نمو نگفتم اون یرایی پیدا میکنه چه هی داری کجاست میشه توه روم سیاه سعی کردم به گشت دارم ولی نشد گمش کردم چه دیر خیلی خواه باید بریم آه قرار بودیم که متوجه شدیم یه نهنگ اومد ورتمون. خوب شد نبودم اون صحنه. جانبه بدونی تونستم به زبان نهنگ با ایشت صحبت کنم ولی مالی باور نمی‌کرد. اما اون به من اعتماد داشت. گوش می‌کنین؟ بعدش میمو رو پیدا کردیم یه ماهی کوچیکی با مزه شیرین که تو بعدترین اتفاقا از من ناامید نمی‌شد. آخوب تو یه هویت حسابی ازشون تشکر کن. از این طرف. اوه! این چه چقدر آشناس. سلام. مالی چه گویی میو؟ آسینتار. لوت خان به ما؟ اونجا واسه سگ زندگی یه درگاهی هیچونم تا اونجا بدونی. دوری الان دوستات اونجا؟ بله، اونجا یه گیر افتاده بودن که اونجا خودش به یه جایی میره. ها اون کامیون، اونا سو کامیون آنی دیگه. اونارو نمی‌بینم. نا نا نا نا نا نا. تو بچی کامیون؟ میدونم دوستای صمیمی بودن ولی با کامیون نمیشه رو در رو شد. اصلا. لطفاً فقط میدونم دلم براشون تنگ میشه. دلم براشون تنگ میشه. اینو که گفته بودم. آخ دوری. مامات، ماله اینا نمو خیلی برام عزیزن اونا مثل خانواده‌م هستن. می‌خوام یه پیداشون کنم. فقط می‌دونم که کار سردو بشه که باهاشون آشنا شدم. آخ من گفتم سهرنویش، سرنویش، سرنویش، سردویش. دوری. آخ. چه خبره برادر؟ دوری، چه درد سر افتاده؟ خون. اوه. به این داشت کردم خب... میرون مؤسسات سر... باید بپرین بپرین به اجام وقت نداریم سر نبیرم داری، داری، کامیانی که دوستتوشن داره میره بای نه نه نه نه نه, نه. سر وقت شدیم، سر نبیرم خیلی خوب، آماده این؟ یک، دو نگو، نمیتونم، اونجو دوام نمیارم سر نبشت چشمای من قوی ترین چشمای دنیاست. چشمت قوی ترین چشمای داهی هات. من چشمتو میشم. تو چشمه منی؟ ولی بل... ولی دیواره چی بیله؟ تو اقیانوس دیواری وجود نداره. واقعا. تو. سرنوشت تو همین سرنوشت. چرا صوت تا نگفتی دیوار کاره؟ آروم بابا بی جان بساب کو دیوار دیوار. اوه اوه. سناد دوست اون طرف لوله ها سرنوی سلام اون جایی او بابا یا آبی خانوادت هم خیلی شبیه خوده بیلی هستم سلام کنم آقای اردوری منو جنی صدا کنم خیلی خوب وقت نداریم باید کامیان رو مطیبه کدوم کامیان بیلی آخرین وضیعت بله از سای قربان اوه! دیدمش داره وارده بزرگ را میشه به سمت جنوب برید باید طولاشون رو بگیریم این سحنه رو نمیشه از درستان چرا؟ وای پس دار چه سحنه ای بپنشی؟ جرالت تو خون شدی؟ زیاد جا خوش نکن چرا عجب زنید شدید یا بیلی نوبت توی موقعیت جدید الان قربان همچنان سوار کامیون ولی فارو میره به سمت جمال وای اونجا رو یه دست سمور بانمک یه دونش رو میخوا اگه خور؟ جرا و کامیان اونجا هست داری چطوری باید تورش بشین این کاش میتونستی ماشین ها را متوقف کنیم توقف ماشین ها کی متوقف میشن وقتی مردم چیز رو بامزه نگم میکنه ماشین ها رو متوقف میکنه, رو متوقف میکنه. چیز رو بامزه شیه خودش فهم میدم قبل از این که نقشم بیادن بری باید وقتی کامیان نزده که پلچون من رو پرت کنی بالا فهم میدم شما ها با من بیان وقتی همجا بمونن سادوری اصلا دوباره ترکمون آره آره حق با مادر تا باید پیش ما باید بمونی باید پیش ما بمونی اگه اگه جای دوری بری و خیلی طور بکشه و مما. گیج بشی و یه وقت مما. حواست پرت بشه مما. دوباره شما رو گم کنم آه. آره ماما بابا مشکل پیش نمیاد چون میدونم هر جا که باشم میتونم پیدوتون کنم بخترم بو یک کم برو به چپ یک کچون رو سمت راست خوبه خوبه، حالا وقتشه، ولی پرتاب نکنی باشه، پرتاب کن، حالا، حالا بجو نقصت عملی میشه آره، کدوم نقصه، وای حالا چیکار کنم؟ چقدر ماشین؟ چرا توقف نمی کنم سمروها، توقف ماشینها، توقف ماشینها توقف ماشینها سمروها همدیگه رو بغل کنین از کجا بدونم بله که میدونم معلوم کاره که میتونه باشه آه. داری آه برسونی آه. تو دیوونه شدی آه. چطور اومدی اینجا؟ داری فکر کنم بیگه نمیدونم آه منم هم اینطور ولی جیگره در بیاد یه لحظم نشد فراموشت کنم انگار دو عضو خانواده هم گم شده بودن ما یه خانواده ایم میدونی که چه حسی داره هره میدونم چه حسی داره هی برزی پایی میدم اینجا چی کار میکنی؟ دوارم مهرمی گرفتی یه پایی داری ماشینه درن خاریکل میکنه اینجا رو بذاریم به واحده من بکی بکی بیا به کمک نیاز داری بکی بکی چون بالا انبیا داری. بابا صاحب خودرو کجا بود؟ خنگه. وایس دیگه کردام با یاد برگردی بکین. بکین برگرد. آقا منو کدمران نکن. استوری کو شما چی هستین؟ جینی. مرسی. نمو. بهوان ازتون ممنونم که از دوری محافظت کرد. دوری؟ اون هنوز کامیونه. بکین. ورا دو باله داری. اون دوری. آخ. وقت خود رو خود روزی نه نمیچیدم یعنی اینکه تو هم نمیده کلی بلند با ما میگه ای اوخیانو خوش نبورده این هرچی که فقط نقشهای منو قرام کنی گوش کن تو زندگی فقط یه هدف دارم اونو هم نکن تو گوش کن ببین من اه اه اه... چی میگم نقشه داشتن خوب نیست مگه من نقشه داشتم خونه بادم با نقشه گم دوش شدن نه با نقشه مارلینو پیدا کردم نه من از تو با منو سو نقشه داشتی پس نقشه این نبود چرا چون زندگی بحث به با حسب اتفاق نه نقشه نتیجه اینکه جانوالی با ما مامیه توقیانوسن که به میته جبهه شیشه احمقانه دهخانی و بپوست وارد می سفقا <تصفيق> یهو یک از دوستای قدیمی بنام سیگورنی بیور بهم گفت فقط هر چیزی رو باید رعایت کنی نجات حوانبخشی و سه‌ومی هم بود تا سه‌ومی شیو درست شما چی میگی راو سازی چی راو سازی La vaseldi, la vaseldi, la vaseldi. Hola que esta otra, me quiero en cabule. Anke kan. Tu quiero hoya. Tu quiero hoya. Tu pasim vale, mano sep kasi. Uh, terazar por el carro vas cone. Uh, valias birun gofle. Dos torito niet. Sardeves, diva, diva, diva. Kauna sap konori. Pile cono carro. دارم گابشو میکنم داره بیفایده است خالان اون نشد هزمان یکی دیگه میشه گوش کن داری برای گوش راه دیگه این وجود نداره مگه میشه نباشه همیشه راهی هست نمیخوام نا امیدت کنم ولی این باردگه هیچ راهی نیست خب به پس اون چیه امالا اونسانه چه تنگیدی اونجه یه نقصه هم میباشه میریم بنام و تو از من نخواستی هر لحظه تو رو خدا بیا دیگه چی؟ عزیزم اینو بذارشون نیم شرط رفت اونجا دست رو اثر ما کلی هنگ کرد پودار یکیشو انطوان کن دیگه چه برو داره بابا، خود خودت بودی؟ بگه! بایستا! علا حسابی تعلیم رونندگی ندارم ولی فقط یه نکته بگم که باید یه نمه گازشو بگیری بلدی یا نه؟ حالت هم؟ بگه! آقا! آقا! چطه نه لساسی فرمون بده؟ باشه، خب چون تمام ماشون و سبت چپ میرن تو هم بپیش به چپ خیابون گیلمن کچه اشبیل حواظ پرتن و بازم خیابون گیلمنه آ... ببینم دارید به روح اعتقاد دارید تا کی بپیچیم چه؟ اگه بفهمیم از خودون مسیر اومدیم اینجا از همون جا میتونیم برگردیم باریکرد تنهایی فهمیدی را؟ چیکار کنم یادم نمیاد چطوری باریده این مسیرشون نه ای اونا چقدر عشنان هنگ از اون طرف اومدیم نمیشون راست راست باید کنم فقط فرمون بده بچه باشه باشه آه آه یه دو راهی می‌بینم خب فرمون بده سبت آقیانوسی یه قایقه چه بوته بوتی دارم من باییش فرمون بده قایق سبت آقیانوسی راست، راست وقتمون تو به تموم میشه بگو فرمونه بعدی چه خب میگم، فکر کنم، نمیدونم ولی خب حتما یه فکری به سرم میزنه آف geçen gün yek perendeha'yı ton balkon okyanusun üstü çatı hengi günam kerdi ya cheese mi binam o kendişunlar der mi mi kugi rotadan mamuradan malşunlar habi çöre domede hengi okyanusunu verum ne taht gaz buru hep mi gust bacce Hey boy, hey boy. Boy na, dori alon çikon mi keçim, çikon mi keçim. Hay, mi çona mazot diham dimona vazi dardim. Dimona vazi o eşraf. Ha kurtike. Oo, ra karar ndoram, qordam me bomba as. Oo. Hay ma no begirim. I see trees are green. Green. Too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking hands. in intezar mein bus by night aakhri qism ki marhalay zindagi hai jaari hai main chahta hoon maaf kar de bakoon rahless man se bol diyo rasta va manna hai ke main pehls ek do se آ ا چه دفعه میشم؟ این بقیه کجاست؟ آ آ نکنه جهنم گذشتم؟ نه نه نه نه, نه،, نه، اونایی کارو نمیکنم باشه مشکلی نیست پیداشون میکنم دیشب چیکار میکردم؟ من دیشب چش میذاشام در واقع میخواستم قایم بشن ولی واسه چی قایم شم؟ ای وای آ هر شیش 7 8 9 10 مدیمن و دعوا پیدتون کردن؟ دیدن بهتون پیدتون کردن بله خب با بچه باید کردن با کمو بر آخه کسی پیدن میکرد بسه دیگه بچه ها نوبت درسه نمیگم بسه دیگه وروجه وقت درسه ای بابا آقای به با که از مهاجرات تشک میارن اگه با خوش باشه حالا حالا همونجا موندگاره اون وقت جایگوزین آقای ری بر میکن میخواه درباره ای را داره مقضه طلاعاتی بگیره؟ دیشب خوب خدافظ مامان خدافظ بابا خب به سلامتی به نظرم وقتش برگردیم خونه یکم روشقایو بلند بدیم تو میای داری من نه میخوام یه دوری بزنم باشه چی بری دور بزنیم نه این این به نظرت می... کار معقولیه آره میرم کمی از مناظر لذت ببرم فعلا فیلن... خوش بگذره عصبی ما قلب امید ورم روز خوبی داشته باش عباس باشه که گم نشی Dori, na na na na na na na duri na duri duri duri سلام مرو. او سلام داری؟ انگار نگران خوبی؟ نه نه نه نه نه من خوبم. قیافم اینجوریه. چیه؟ می‌خواستم بگم تو موفق شدی. آره تو موفق شدی عزیزم. آره؟ چی؟ عزیزم تو صدفا رو دنبال کردی این صدفا راهی بودن برای برگشت بخونه فوقه همی محفظ شدن خود خودن تنهایی آره میدونین یعنی چی عزیزم؟ این یعنی تو هرچی رو بخوای میتونی تو ذهنت نگه داری فوقه؟ فوقه همی بازی کنین ماما میشه برم بابشت رو بازی کنم؟ آره معلومه که میتونین برو دنبالشونه عزیزم نه و هیچ وقت از یادت نمی رهه. آره. فراموش نشدنیه. دانلود به روزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. But I am unforgettable to you. Mm -hmm. just call little father that's it i am truly going to bomb it what <laughs> up all right gang good work <laughs> oh, look low we made it <laughs> you won't have any more problems from here on out no <laughs> yeah! respect for ocean life well no what